ادم افتاد تو بندگی خدا بی اثر نیست اثر دره اولین اثرش نیست که به تدریج ایمانش میره بلا با رفتن ایمان به ایمان انسان بیاد میشه در سایه قوت ایمان آدم انواری میبینه این انوار و خدا منوان اینجا راه درست بیا و به عنوان رفع خستگی و مجده به آدم و میشه. از این که خدا این را پیش باشه داشته و از این که مبخر شد این کار را انجام بده اینا پیش اگه آد اینا که پیش اگه آد اوان الله و تری راه برای شوشن میشه میفهمه راه همین را و باید ادامه بده انجام واجه و ترکه راه میادی یعنی بدهی در مرامر خدا خب این میره تا اونجایی که ام داشته باشه وادو بتدی داشت این برنامه ی و تکاملی انسان موجب در مسیر بتدی و مداومت حالی. کمی از انسان تصور کردیش رفته، به بندی دیگران مسن، این مقدار و دان، بیان فرمودن، باقیش خود را ونده کرد، باید سعی بفرمی که توی این رای همسی مسالی هست. اشول همه شنید چون که نامش بود. همونی که خدای مطال نگفته چون ظاهر بود از فهم مردم قالت هر بود شده هم هجبالا میشاره اما بیشترین کار و هم خدا و هم مذارات محسومی رو دعوت انسان ها به تقوی انجام دادن این هم آیات تقوی نازل شده بود دعوت مردم به ترکی گناه انجام دادن و یعنی مقدمات و راه رو زیاد تأکیل کردن چون اینا تا وارد خط تقوارشن وارد بعدگی نشد به اینکه جدا عمده اینه این روش زیاد کار شده. ما مگر بخوایم به دنبال خاتم هم یا با قرآن و حدیث حریکت کنیم خودمون و جامبر هدایت کنیم باید ازیج شروع کنیم از ترک گناه باید مردم رو دعوت کنیم که گناه نکنند گناه اولین قطر پدر فرد جامبر درونگه حرف هایی دیگه شما گوه اول ترکیه کنا انجام واجبات رو ترکیه این گرد قفلت قرار گرفته اگر ما بخواییم شغل و شغل ادایتگری و تبلیل مثل انبیاء باشه باید از اینجا شروع کنیم اونا اول اسمت پیدا کردن تو بعد آمدن ما معمول اسمت رو ادا کنیم بلیم معمولیم تقویم رو مراحت کنیم اگر نکنیم تو خط اونها نیستی مبلغ نیستی مقاصد دیگری داریم در این حرفا مخبتی انسان تقوی مراد نکر ایمانش پایینه ایمان که پایین بود تمام کارای انسان تشن نوشته دنیا و پول بله از آدم تبلیغم اما یکیسی بود خیلی منبر خود داشت اونایی که بخواستن مجالسشون رو رق بیرا کنه مردم زیاد جرم دعوتش می کردن اما چون تهیی می کرد یاد می گره فوشش می دادن عزیبا می گفتن اگه نیاد جمعیت نمیاد عزیبا ببینن تهیی می کنن پس سلامی بالا فروشش می این هدایت گلی نیست کاری یاسپ. هست بر بیا کارشون این بود بعد رو دعوت میکردن به بندگی در برابر فرمان خربم همینه اون تا چون کردیم به حدیث عربی ما مجبوریم عربی بخوریم. اینا که ما میخونیم به این منظور یادمون نریه وقتی ما با عربا حرف بزنیم منظور اینه که عربی یاد بگیریم قران رو بفهمیم خدا چی گفته روایتا بفهمیم پیغمبر امام چی گفتن اینا رو یاد بگیریم خودمون اول کنیم و به دیگران یاد بدیم کار ما اینه این وسط کارای پیدا بشه نمیدونم باید بازی کنیم با کامپیوتر نه اینا, اینا مسئالی دیگه است هدف اینه ما درس میکنیم عربی که برآن و حدیثه می چی گفته خدا و پیغمبر امام بعد خودمون رو عمل کنیم بعد به دیگران یاد بده این عمر ما رو مدپر کنم اونطور که انبیو کارشون در تمام عمر همین بود حالا اگر این بسطا در احسار و قرون آینده ای چیزایی شد ساخته شد که بهتر توانست. کار ما را انجام بده ما استعماله می کنیم اما هدف این نیست که مثلا درست تحتیل کنیم بریم توی یک از آدهای کامپیوتر کار کنیم ما ایچه ها بگیریم تو اون شنن. این نیست هر وقت یاد گرفتی چی؟ اونه خدا و برای امام برای ما مردم و هدایت می کردن به طرف خدا یاد گرفتی و خودت هم بیاری کردی اینو تولستی تو مردم و جامعه پیاده کنیم و وقت انجام پر انج به الله و ستایه و خدای رجد کار بشین یا آدم احساس نیاز مالیم کنه میره یعنی از راه رفته بیرون بگنه خدا خدایم تال به همون رو برمن کنه به همون نیت که آمدیم همون ادامه بدیم انشالله اینا رو خوب یاد بگیریم درد توصیه اینه خوب درس بخونیم و خوب هم رو تمرین کنیم این دو, دو باید باهم باشه به الله راه همگی نیست هم پیغمبرو فاسق با همه نه تنها آده بلکه معصوم بودن چون اگر مردم بگی بره خودی این کاروی بک میکنه خوش برهش نمیده این, این اولی مسئله است ولی خب دالا اکثریت میرن دنبال درس، اما تقویر و براش اهمیت رازه باقایی نیستن رضا خیر و منفعت دینی کم میشه خیلی و وسط را برمیدند میرند سر و کاری دیگه و از هایی اگر همه از اول خوب درت و تقوی رو خوب تمنیم خدا از وجود اینها در در جامعه این روشن میسازه که همه استفاده بکنند ازش خود داریم خدایی به همه این متوفیل ما هم اونگوده باشیم این شانده نیستانه ارهای تجیبی همه هم بیاییزام خاص خودمم بیا به درد